فصل 17. از پنجره دور شدم. امیدم را از یک مارکی که آن پایین توی کسافت افتاده بود بریدم. به آشپزخانه رفتم که یک نان کرمالیده دیگر برای خودم درست کنم. چیز زیادی برای خوردن نداشتم. یک قوطی لوبیا، یک قوطی آلو. من, من از آلو خوشم نمیاد ولی مونیکا این را نمیدانست. نان نیم شیر حدود یک چهارم روم قهوه پنج تا تخم مرغ، سه تا برش چربی خوک و یک لول خردل در پاکت سیگار توی اتاق نشیمن هم هنوز چهار سیگار باقی بود آه، چنان احساس بدبختی می کردم که حتی امید نداشتم روزی به دوباره تمرین کنم زانویم چنان ورم کرده بود که نزدیک بود پاچه شلوارم بشکافد و سردردم چنان شدید که تحملش برایم غیر ممکن شده بود دردی دائمی که مثل مته مغزم را سراخ میکرد روحم سیاهتر از همیشه شده بود و دست آخر طلب جسمانی و دانستن این که ماری در روم است به او احتیاج داشتم به پوستش به دستهایش هایش بر من همانطور که زومر زمانی گفته بود ارتباطی زنده و حقیقی با زیبایی بدن دارم و دلم میخواهد زنان زیبا دورورم باشند. زنانی مانند همسایه هم خانم گرپسل ولی من احساس طلب جسمانی نسبت به این زنان ندارم و اغلب زنان از این موضوع می رنجند. هرچند که مطمئنم اگر چنان احساسی هم داشتم و سعی می کردم آن را ارضا کنم <تصفح> پلیس خبر میکردند. داستان طلب جسمانی، داستانی بغرنج و وحشتناک است برای مردانی که تکم سر نیستند شاید در و رنجی دائمی باشد ولی برای مردان تکم سری مانند من منجر به بروز رفتارهای بیعدبانی پنانی می شود که اغلب زنانی را که معتقد به مهر هستند می رنجاند. حتی خانوم بلوترت که زنی پرهیزکار و ساده دل است همیشه به این خاطر کمی از من رنجیده جنایات جنسی و جرم‌های اخلاقی اخلاقیی که مردان مرتکب آن میشوند و روزنامه ها همیشه درباره آن می نویسند گاهی برایم قابل درک است و وقتی میشنوم که هنوز چیزی به نام وظایف زناشویی وجود دارد و قانون و کلیسا زن راتب قرار دادی که بسته موظف به پیروی از آن می‌کنند دچار دو دوچار وحشت می‌شوم. آدم که نمی‌تواند مهربانی و صمیمیت را وظیفه کسی بداند می‌خواستم سعی کنم با پاپ هم در این بار صحبت کنم حتما اطلاعات نادرست در اختیارش می‌گذارند. برای خودم نانکر مالیده درست کردم به راهرو رفتم و از جیب پالترام روزنامه اصری را که در ایستگاه راه آهن کلن خریده بودم بیرون آوردم روزنامه اصر گاهی با آدم کمک میکند خالی شود مثل تلویزیون روزنامه را ورق زدم عنوانهایش را سرسری خواندم تا اینکه خبر کوچکی پیدا کردم که به خندهام انداخت نشان صلیب پاداش برای دکتر هربرت کالیک کالیک همون پسر بچه است که از من به خاطر توهین به نازی ها شکایت کرده بود و در ضمن محاکمه تقاضای شدت عمل بی و داشت پایش را در یک کفش کرده بود که باید بدون چون و چرا در بارم سخت گیری کنند این فکر نبوغامیز هم متعلق به او بود که یتیم خانه را برای آخرین نورد و سیچ کند میدانستم که او حالا به حیوانی وحشی و عالی مقام تبدیل شده در روزنامه اصر نوشته بود نشان به پاداش را به خاطر اشاعه افکار دموکراتیک در میان جوانان به او داده اند. او دو سال پیش یک بار مرا دعوت کرد تا با هماشتی کنیم. آیا باید او را برای اینکه گئورگ آن بچه یتیم را هنگام تمرین با نارنجک کشته بود میبخشیدم یا برای اینکه از من بچه ده ساله به خاطر اهانت به نازی ها شکایت کرده بود و با سرسختی اصرار به مجازات بیچون و چرای من در دادگاه داشت ماری عقیده داشت که نباید دعوت به آشتی را رد کرد دست گل خریدیم و به خانهشان رفتیم او در حوالی آیفل یک ویلای زیبا داشت، یک زن زیبا و چیزی که هر دوشان با غرور از او با عنوان تنها بچه نامی بردن. زنش به حدی زیبا بود که نمیشد و جان دارد یا عروسک است. تمام مدتی که در کنارش نشسته بودم دوچار وسوسه شده بودم که بازوها شانه ها یا پاهایش را توی دستم بگیرم تا مطفئن شوم عروسک نیست. تمام آنچه که در تمام مدت به زبان آورد عبارت از این دو اصطلاح بود آخ چقدر عالی و آخ چقدر وحشتناک ابتدا او برایم خسته کننده بود ولی بعد مجذوبش شدم و برایش از این در آن در صحبت کردم مثل وقتی که آدم سکه در دستگاه های خود کار میاندازد تا بفهمد چگونه کار میکند وقتی برایش گفتم که مادر بزرگم مرده است چیزی که به هیچ وجه حقیقت نداشت مادر بزرگم دوازده سال قبل از آن مرده بود گفت آه oh, چقدر وحشتناک من تصور میکردم وقتی یکی میمیرد آدم میتواند حرفهای احمقانه زیادی بزند ولی نمیگوید آه oh, چقدر وحشتناک بعد برایش گفتم شخصی به نام هوملو که وجود خارجی نداشت و من خیلی سریع از خودم ساخته بودم تا واکنشی مثبت از او ببینم دکترای افتخاری گرفته است گفت او چقدر عالی وقتی برایش گفتم برادرم کاتولیک شده از لحظه این مکس کردی ای مکس نشان جاندار بودن این زن بود با چشمان درشت و خالی عروسکیش به من خیره شد که کشف کند از نظر من این واقعه را جز کدام گروه باید طبقه بندی کند سپس گفت وحشتناک نیست هرچه باشد موفق شده بودم تنوعی در اصطلاحش وجود بیاورم به او پیشنهاد کردم اوها را کنار بگذارد و فقط عالی یا وحشتناک بگوید لبخندی زد دوباره کمی مارچوبه توی بشخابم گذاشت و گفت آه چقدر عالی در همان شب با تنها بچه هم آشنا شدیم پسر بچه پنج ساله به نام بنگل که بدون کوچکترین تغییر در ادا و حرکاتش میتوانست در آگهی‌های تلویزیونی شرکت کند با این ادای مسواک زدنش شب بخیر پاپی شب بخیر مامی یک تعظیم به ماری یک تعظیم به من مانده بودم که چطور هنوز تلویزیون او را کشف نکرده بعدا وقتی کنار بخاری دیواری قهوه و کونیاک می‌نوشیدیم هربرت از دوران بزرگی خبر داد که در آن زندگی می‌کند بعد برایمان شامپاین آورد و احساس بزرگواری و عظمت کرد. از من طلب بخشش کرد حتی در مقابلم زانو زد تا از من آنطور که خودش می تقاضای آمرزش غیر کلیسایی کند و من با خودم به کشمکش افتادم که لگدی به ما تحتش بزنم. ولی چاقوی بری را رو از روی میز برداشتم و با تشریفات روی شانه اش نهادم و او را تبدیل به یک دموکرات کردم. زنش فریاد زد: آه چقدر عالی!" و وقتی هربرت دوباره به حالی منقلب سر جایش نشست، خطابه ای درباره یانکی های جهود ایراد کردم. گفتم مدت زمانی طولانی گمان بر این بوده که اسم من شنیر با شنورن ارتباط دارد ولی ثابت شد که اینطور نیست و از کلمه شنیدر مشتق شده است. نه از شنورن و من نه جهود هستم و نه یانکی، با وجود این و ناگهان سیلی به صورت هربرت زدم. چون یادم آمد که گوتس بخل یکی از همشاگردی را مجبور کرده بود که دلیلی برای آریایی بودنش بیاورد. گوتس بیچاره به مشکل برخورد چون مادرش ایتالیایی و اهل یک دهکده در جنوب ایتالیا بود و به دست آوردن مدرکی که تا حدی دال بر اصل و نسب آریایی او باشد غیر ممکن بود. به خصوص که دهکده محل تولد مادر گوتس آن زمان در اشغال یانکی های جهود بود، افتهای درداور و خطرناکی بر خانم بخل و گوتس گذشت تا اینکه که معلم گوتس به فکرش رسید از یکی از متخصصین مسائل نجادی دانشگاه بان تصدیقی برای گوتس بگیرد او تصدیق کرد که گوتس غربی خالص کاملا خالص است ولی هربرد کالیک ولکون ماجره نشد و این حرف بیربت و پوچ را چو انداخت که تمام ایتالیایی ها خائن و وطن فروشند و گوتس تا پایان جنگ خواب راحت نداشت این مطلب وقتی یادم افتاد که سعی کردم خطابه ای در یانکی های جهود ایراد کنم و بدون مقدمه کشیده ای به گوش هربرت کالیک زدم. گیلاس شامپاین را توی بخاری دیواری پرت کردم و چاقوی پنیر بری را به دنبالش و دست ماری را گرفتم و کشان کشان از آنجا بیرون بردم. آنجا تاکسی پیدا نمی شد و مجبور شدیم برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس زمان درازی پیاده روی کنیم. ماری عشق میریخت و تمام مدت میگفت رفتار من غیر انسانی ناشایست و مخالف تعالیم مسیحیت است. من هم گفتم که مسیحی نیستم و اتاق اعتراف هنوز برای من باز نشده است او همچنین پرسید که مگر در دموکرات شدن هربرت تردید دارم و من گفتم نه نه نه نه به هیچ وقت شکی در این مورد ندارم ولی خیلی ساده از او خوشم نمی آید و هرگز هم خوشم نخواهد آمد دفتر تلفن را باز کردم و به دنبال شماره تلفن کالیک گشتم. حالم طوری بود که میخواستم با او صحبت کنم. یادم آمد که او را بعد از آن ماجرا یک بار دیگر در یکی از دوره های خانه دیده بودم. او همانطور که با یک خاخام درباره یه معنویات یهودی صحبت می‌کرد، نگاهی التماس آمیز به من انداخت و سرش را برایم تکان داد. دلم به حال خاخام سوخت مرد بسیار پیری بود با ریش سفید و قیافهی نیکوکار و به شکل ناراحت کننده ای آزار حرفی نیست که هربرت به هر کس می رسید می که زمانی نازی و ضد یهود بوده ولی تاریخ چشمهایش را باز کرده و درس عبرت بزرگی به او داده است ولی کسی نمی درست یک روز پیش از اینکه که وارد ها وارد شوند در باغ خانه ما تمرین تیراندازی کرد و به آنها می گفت وقتی اولین خوک جهود را دیدید بی‌معطلی گلوله این سارش کنید چیزی که آن روز در دوره مادرم مرا به هیجان آورد ساده دلیه ماجرین به وطن برگشته بود آنها چنان تحت تأثیر اظهار ندامت و بیعت با دموکراسی اینها که با بوغ و کرنا اعلام میشد قرار گرفته بودند که همه جا پر از صحنه‌های پیوند برادری و در آغوش کشیدن بود آنها نمی‌توانستند بفهمند که راز اعمال شریرانه در جزئیات آن است اظهار پشیمانی از چیزهای بزرگ کار است اشتباهات سیاسی خیانت در زناشویی قتل ضدیت با یهود ولی چه کسی جزئیات را درک میکند چه کسی میتواند خطاکار را ببخشد آیا من میتوانم برول و هربرت کالیک را که وقتی پدرم دستش را روی شانم گذاشته بود خشمگین با مشت روی میز میزد و با چشمان مردش به من نگاه میکرد و فریاد میکشید مجازات باید به شدت مجازات شود ببخشم یا فراموش کنم که چطور یقه گتس بخر را گرفت و کشان کشان جلوی شاگردان آورد هرچند معلم به آهستگی اعتراض کرد و گفت نگاهش کنید اگر این جود نیست پس چیست سرم پر از این لحظات و خاطرات و جزئیات کوچک است و باید بگویم چشمان هربرت با وجود گذر زمان تغییر نکردند وقتی او را کنار خاخام ساده دیدم وحشت کردم با آن حالت صلحآمیزش و اینکه اجازه میداد هربرت برایش کوکتل بیاورد و درباره معنویات یهودی یاوه ببافد. مهاجرین نمیدانند که نازی های انگشت شماری به جبهه فرستاده شدند و تقریبا فقط دیگران بودند که مردند و. هوبرت کنیپس که در خانه پهلوی وینکن زندگی میکرد و گونتر کرمر پسر نانوا که از سرکردگان سازمان جوانان هیتلری بودند چون حس سیاسی نداشتند و در شرارتهای های آور آنها همکاری نمیکردند به جبهه فرستاده شدند کالیک را ممکن نبود به جبهه بفرستند زیرا او حس میکرد همانطور که امروز حس میکند او با این شامه قوی به دنیا آمده بود جریان با آنچه که مهاجرین تصور می‌کنند به کل متفاوت است البته آنها هم بی‌تقصیرند چون تنها می‌توانند کلیاتی چون گناهکار، بیگناه و نازی و غیرنازی فکر کنند رهبر حزب كیرنهان گاهی به مغازه پدر ماری میآمد با وقاحت تمام بدون این که پول یا کپون بدهد یک پاکت سیگار از توی کشو كشو برمیداشت یكی از آنها را آتش میزد و رو به روی پدر ماری روی پیشخان مینشست و میگفت خب مارتین چطور است که تو را به اردوگاهی قشنگ ولی نه چندان وحشتناک بفرستم پدر ماری میگفت خوک همیشه خوک است و تو همیشه خوک باقی خواهی ماند آنها یکدیگر را از شش سالگی میشناختند کیرن عصبانی می میشد و میگفت مارتین زیاد تو نرو زیاد روی نکن پدر ماری می میگفت از این هم تون تر میروم گورت رو گب کن کیرن هان می گفت خسته نخور من کاری می میکنم که تو را نه به اردوگاهی قشنگ که به اردوگاهی وحشتناک بفرستند این جریان همینطور ادامه داشت و اگر دست محافظ کیرن هان به دلیلی نامعلوم که ما هرگز نتوانستیم ما را کشف کنیم بالای سر پدر ماری نبود او را میبردند طبیعی است که او دست محافظش رو بالای سر همه نمی گرفت، مثلا بالای سر مارکس چرم فروش و کروپه کمونیست هر آنها رو کشتند. امروز وضع رهبر حزب بسیار خوب و مشغول خرید فروش ساختمان است. یک بار که ماری به او برخورد، به ماری گفت دلیلی برای شکایت زندگی ندارم. پدر ماری همیشه به من میگفت این که داستان نازی چقدر وحشتناک بود را از این میتوانی بفهمی که من زندگیم را مدیون خوکی چون کیرنهان هستم و مجبورم کتپن هم کنم که مدیون او هستم در این فاصله شماره کالیک را پیدا کردم ولی در گرفتنش مردد بودم یادم آمد که فردا نوبت دوره مادر است. می توانستم به آنجا بروم و دست کم جیبهایم را با سیگار و بادام شوری که از پول پدر و مادرم خریداری شده بود پر کنم یک پاکت خالی برای زیتون و یکی هم برای کیک پنیری هم را هم ببرم و بعد با کلاه دور بگردم و برای یکی از اعضای محتاج خانواده پول جمع کنم وقتی پانزده ساله بودم یک بار این کار کردم برای اهداف خیرخواهانه پول جمع کردم حدود صد مارک جمع شد از اینکه این, این پول را برای خودم خرج کردم عذاب وجدان نگرفتم. اگر فردا برای یکی از اعضای محتاج خانواده پول جمع کنم، حتی دروغ نگفتم. من واقعا یک عضو محتاج خانواده هم و کمی دیرتر می توانم به آشپزخانه بروم و سرم را بر شانه آنا بگذارم و گریه کنم و یواشکی باقی مانده ها را توی جیبم بگذارم. تمام ابلهانی که پیش مادرم جمع میشوند این کارها را به عنوان یک شوخی بامزه تعبیر میکنند و مادرم هم مجبور است با لبخندی تلخ شوخی بودنش را تایید کند و هیچکس نخواهد فهمید که این کارها تا چه حد جدی است این آدم ها شعور ندارند البته این را می دانند که یک دلغک باید مالی خولیایی باشد تا بتواند دلغک خوبی باشد ولی نمیتوانند بفهمند که این مالی خولیا برای خود دلغک تا چه اندازه جدی است در دوره مادر همه را خواهم دید زومرویلد و کلیک لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها و شش مدل از رؤسای جلسات حتی مخالفین انرژی اتمی مادرم حتی زمانی سه روز مبارز سرسخت ضد اتم بود ولی وقتی رئیس جایی برایش تشریح کرد که نتیجه یک سیاست واقعی ضد اتمی پایین آمدن شدید نرخ سهام است مادر بیدرنگ واقعا بیدرنگ سوی تلفن دوید به کمیته تلفن کرد و تنفرش را از آنها اعلام کرد من البته پس از این که با کلاه دورم را زدم جلوی چشم همه به کالیک کشیده خواهم زد. زومرویلد را به عنوان کشیشی حق باز و درو به باد فحش و ناسزا خواهم گرفت و نمایندگان حاضر اتحادیه کاتولیک ها را متهم به تشویق زناکاری و خیانت در زناشویی خواهم کرد. انگشتم را از سوراخ شماره گیر بیرون آوردم و به کالیک تلفن نکردم. فقط میخواستم از او بپرسم که آیا در این فاصله توانسته بر گذشتش غلبه کند؟ آیا روابطش با قدرت روبراه است و آیا میتواند معنویات یهودی را برایم توضیح دهد یا نه؟ <متصفيق> کالیک یک بار در گرد همایی جوانان طرفدار هیتلر نطخی با عنوان ماکیاولی یا تلاش برای ایجاد ارتباط با قدرت ایراد کرد. من چیز زیادی از این نطخ دستگیرم نشد، فقط این جمله را فهمیدم اقرار آشکار و سریع به بستگی با قدرت از غیافه دیگر سرکردگان جوان ایتلر پیدا بود که حتی برای آنها هم این سخنرانی زیاد روی بوده است ارچند که کالیک از ماکیاویل صحبت نکرد بلکه فقط از کالیک حرف می‌زد و از چهره دیگر رهبران حزب میشد فهمید که آنها هم این سخرانی را نوعی یا و سرایی و بیشرمی آشکار می دانند. در روزنامه ها مطالب زیادی درباره باره بیناموسی ها و جوانانی که حدک ناموس می کنند می خانیم کالیک چیزی جز یک حدک ناموسگر سیاسی نبود و هر جا پایش می رسید ادی حدک ناموس شده باقی می گذاشت. از اینکه میخواستم به دوره مادرم بروم خوشحال بودم. بالاخره می‌توانستم کمی از پول پدر مادرم را تصاحب کنم. زیتون، بادام شور، سیگار. می‌خواستم سیگارهای برگ را دسته دسته توی جیبم بگذارم و به قیمت عرضان تر بفروشم. نشان کالیک را هم از asinش میکندم و به او سیلی می‌زدم. حتی مادرم در مقایسه با او اخلاق و رفتاری انسانی تر داشت. آخرین بار که او را دیدم در خانه پدر و مادرم نزدیک جالباسی بود. نگاه غمگینی به من انداخت و گفت برای هر انسانی در زندگی شانسی وجود دارد که مسیحیان به آن مرحمت الهی میگویند. جوابی ندادم هرچه باشد من مسیحی نیستم یادم آمد هنگام سخنرانیش از شهوت، خشونت و ماکیاولیسم جنسی نیست صحبت کرده بود وقتی به ماکیاولیسم جنسی او فکر میکنم دلم به حال جنده هایی که برای خاموش کردن شهوتش پیش آنها می سوخت. همانطور که با زنان شوهرداری که طبق قرار داد وظیفه داشتند با مردی حیوان سفت بخوابند احساس همدردی می کردم به بیشمار دختر زیبای جوان فکر می کردم که سرنوشتشان این بود که یا در مقابل پول با مردی مثل کالیک بخوابند یا بدون پول با شوهرانشان هم بستر شوند و بی هیچ میل و رغبتی آن کار را بکنند